بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم عجل لوليه الك الفرج والعافيه والنصر ومنون علینا به رضاه و هبلنا رعفته و رحمته و دعائه و خیره خب خدمت دوستان عزیزم بزرگواران و عزیزی که اینجا تشریف دارن عرض سلام دارم انشالله که بستری که ایجاد شده زحمت کشیدن دوستان مؤسسه برای انجام خدمت تو این زمینه مقدس انشالله که تلاشی که میشه تو این بستر مورد رضایت آقای مانوزمانه علیه السلام و مورد پذیرش و قبول الهی واقع بشه به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج خب دوستان بحثی که انشالله توی دو جلسه خدمت دوستان خواهیم بود است با این با عنوان مبانی و دیدگاه های رجالی حضرت آیت الله و خامنه ای رهبر معظم انقلاق بفرستیم خب دوستان همه بزرگواران یه ذهنیتی از رجال دارند یعنی طلبه ای که وارد حوزه میشه یه چیزی از رجال میدونه که رجال هست و سند و حدیث و اینجور مباحث ولی تو فرایند تحصیل حوزوی خب معمولا پرداخت جدی به این مسئله نیست. از اون طرفم نیاز شدید و تاثیرگذاری فراوان داره تو مسیر فقاهت و دینشناسی. نکته ای که هست اینه که ممکنه جمعی که ما اینجا خدمتشون باشیم داشته های رجالی متفاوتی داشته باشند. برخی داده های فراوان دارن، برخی نداده های فرابان. به همین خاطر صحبت در رابطه با مسئلهی مثل این بحث در جمعی که حالا ممکن متفاوت باشن تو این بحث برخی مطالعاتی داشتن، کار رجالی کردن، تخصصی دارن و برخی هم کمتر، به این خاطر گاهی وقت ما مجبور میشیم متنی رو نمایش بدیم توضیح بدیم البته بیشتر سعی کردیم که تو جلسه اول کمتر به این مسئله بپردازیم. اینشاره جلسه آینده بیشتر سراغ متون کوهن خواهیم رفت آغاز بحثمون با جایگاه حدیث در منظومه معارف دینی شروع میشه یک بحث مستقل و مفصلیه که خودش یک نشست کامله ولی در همین حد که در بین ادله شرعی در بین ای که برای استنباط حکم فقی یا حتی برای استنباط نظر اسلام وجود داره حدیث جایگاه ویژهی رو به خودش اختصاص میده تو این زمین هم صحبت زیاده شاید اون کتاب الفتاولواضحه از جناب شهید صدر رحمت الله علی اون بخش اولش که مسادر الفتفاست گویای این جایگاه ویژه باشه یک نگاه جالبی رو به بحث اجماع و دلیل عقل دارن و بعد از اون صحبتی در رابطه با حدیث ایراد می کنن. حالا دوستانی که کم و بیش با این مسئله روبرو بودند می دونن که فقه ما فقه رواییه بستر اصلی نظرات فقهی دیدگاه های فقهی و فتاوا این بستر بستر روایات کم میشه که بخواد فقیه دو مسئله حدیثی نداشته باشه و بخواد مثلا گریزی بزنه به قواعد بدون حدیث از طرف دیگه یک کلامی هست یعنی این تعبیر حدیث مادر علوم اسلامی خیلی شاید بشه گفت گویاترین ای است که حالا حقیر شنیدم در توصیف جایگاه حدیث سال 74 یک اتفاق مبارک در قوم رخ داد تأسیس مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث به کوشش مرحوم آیت الله ای شهری حضرت آقا یک پیامی دادند من زیاد توی دورهایی که دارم کلاسای کتاب میگم دوستان اینو مطالعه کنید فرآیندهایی را حضرت آقا ترسیم میفرمان در مواجهه با حدیث که حتی الان که نزدیک به سی سال از اون روز گذشته برای حوزه علمی ما ناشناخته است من فرازهایی از بخش های از این کلام رو و این پیام رو اووردم حالا این تکش رو میخونیم که و با یک نظر حدیث مادر بسیاری از علوم اسلامی و همه آنهاست امروز درباره حدیث به تدقیق و جداسازی سره از ناسره راست از دروغ مسلم از مشکوک و نیست به تأمل در فهم معزلات و مفاد و مزمونهای اساسی در آن تطبیق یا نسبت یابی آن با کلام الله عزیز حکیم و شرح و بس عالمانه و محققانه و نیز به نش و همگانی کردن آنچه همگان را به کار خواهد آمد نیازی مبرم و سازماندهی شده وجود دارد در کنار این همه پردازش علم رجال بحثی که الان خدمتون هستیم بررسی تاریخ صدور حدیث و سیر آن، کسب آگاهی از آن, زمینه، از آن زمینهی که صدور حدیثی را لازم یا راجع ساخته و جستجو از مضمونهای مشابه در کتب حدیث اهل سنت از جمله کارهای لازم و ضروری است. یعنی مسئله ای که بعد از گذشت سی سال از این ترسیم نقشه راه همچنان رو زمین مونده متاسفانه خب چیز جدید و عجیبی هم نیست این اتفاق. اگر دوستان بخوایم یک مقدار نگاهمون رو به دانش رجال واقع بینانه تر و کاربردی تر کنیم لازمه ما یک مقدار یک قدم بیاییم ما باید بدونیم دانش رجال چی از کجاست یعنی دانش رجال تو چه بستری داره چه کاری میکنه لازمه اینه که ما به این بحث بفردازیم که آقا وقتی ما با یک حدیث با اون جایگاه ویژه در منظومه معارفی روبه رو میشیم از اون مواجهه اول تا التزام به مفادش حالا میخوایم عمل کنیم میخوایم فتوا بدیم میخوایم معتقد بشیم میخوای متخلق بشیم میخوایم بالا منبر برای مردم بگیم. یک فرایند چهار مرحله پیش روی ما هست که به صورت سریع عزیشرت میشیم. تو گام اول ما باید اطمینان پیدا کنیم که یا احراز کنیم صدور حدیث از معصوم رو که آقا این کلام اصلا از معصوم سازر شده یا نه ما میدونیم که کلام معصوم طقه با قرآانه، طقه با سنت است. ولی هر کلام منطبق با قرآن میگه کلام میگه حدیث میشه یا نقطه برعکسش ما میدونیم که معصوم مخالف قرآن صحبت نمیکنه ولی میگه تشخیص مخالفت قرآن با ماست انقدر توانمندیم تو دوستوی ماجرای مقدار پیچیدگی وجود داره خود اهل بیت فرمودن انا اهل بیتن ان صدیقون لا نخلومن کذابن یک با علینا پس وجود دارند کسانی که تو این وادی بخوان تلاش کنن بخوان جملاتی رو در قالب حدیث ارائه بدن خب لازمش اینه که ما تو گام اول احراز کنیم این کلام از محصوم صادر شده تو گام دوم لازمه که مطمئن بشیم این متن حدیثی که دست ما رسیده کم آسیب ترین متنه یعنی ترین متن حدیثه به چه خاطر به خاطر که ما با پدیده هایی روبرو شدیم مثل تصحیف که این پدیده تصحیفات نوشتاری، شنیداری، کتابت و گونه های مختلف باعث میشه که اون چیزی که از معصوم صادر شده مطمئنا تو گام اول اطمینان پیدا کردیم این دقیقاً اون نیست که معصوم فرموده گاهی اوقات کلمه ای کم و زیاد میشه واجه ای مشابه شبیه میشه به چیز دیگه جمله ای اضافه میشه یا کم میشه مثل این روایت معروف که آقا رسول الله صلی اللہ علیه فرمودن اعتی تو خمتن لم یعتها احد اون قبلی خدا به من پیامبر اسلام پنج شیست داده به قبلی نداده یکیش جو علت لیل ارد و شدن و تهورا خدا ارز یعنی زمین را برای من محل سجده و تهارت آور قرار داد طبق این نقل از همین حدیث که تو منابع م... مکرر منابع شیع و سنی اومده بر چیزی که اسم زمین براش ثبت کنه هم میتونید شما سجده کنید هم میتونید تیاموم کنید همین روایت تو منابع شیعی با یک نقل دیگه اومده با یک کلمه اضافه جو العدل ديال الارض و مسجدن و ترابها تهورا طبق این شما نمیتونید بر هر چیزی که صدف زمین کنه تیاموم کنید فقط خاک تهارت آور است پس در واقع اینجا اختلاف فتو بر نمیگرده به مبانی فقهی به مبانی اصولی به نوع نگاه به نمیدونم عمل اصاب برمیگرد به چی؟ برمیگرد به اینکه شما تو بحث نسخه چه کاره اید کدوم نسخه را ترجیح میدید تو گام سوم ما وارد فرایندی میشیم با نام فهم صحیح متن حدیث که این مراد از این حدیث دقیقا چیست گای قدید دانش فقه یه مقدار با این جاشو تو زهنها خلط میشه که مثلا منظور فقه الحدیثه میگیم آره او نه یه سوال مطرح میشه که آقا میگه کلام احمه پیچیدگی داره احمه علیه مسلم میگه برای مردم صحبت نمی کردن. خب دیگه یه صحبتی که شست است میگیم اگر با خود احادیث و با نوع مواجهه اصحاب ما یه مقدار سرکله بزنیم میبینو نه اینجوری نیست مخاطبین متفاوتن لایه های فهم مخاطب، ظرفیت وجودی، ظرفیت پذیرشی مخاطب به قدری متفاوته که اون عبارت لو علمه، ابوذر ما فی قلب سلمان، لقتله یا لکفره میاد وسط دو نفر در اوج قله های معرفت و ایمان این رابطه رو با هم دارن آقای ممصدق علیه السلام فرمود این حدیث اول کتاب معان الاخباره نمیدونم چه مقدار دوستان با کتاب شیخ صدوق آشنا هستن خیلی کتاب دلشسبی داره لطفا معان الاخبار معنای احادیث عنوانه با همین هم شروع میکنه حضرت فرمود انتوم افقه ها ناس اذا عرفتون معانی کلامنا نا میخواید بشید پشید میخواید خود رو دینشناس بدونید یه راه داره بفهمید ما چی گفتیم فهمش واقعا پیچیدگی داره خب آقای تصور میشه که احراز کردیم کلامی از معصوم صادر شده دقیقا با این الفاظه مرادش هم مشخصه خب باید بریم عمل کنیم میگیم یه مرحله دیگه مونده مرحله بعدی اینه که این حدیث برای چی صادر شده جهت صدورشو به دست بیاریم مثل چی؟ مثل تقیه؟ ما میدونیم که ائمه علیه مسلم در دورانی بودند که این مجبور بودن عیمه برای مدیریت جامعه شیعی و حتی مدیریت جامعه اسلامی و حتی بشری معارفی رو به گونه های مختلف بیان بفرمان تقیه یکی از عوامل اصلی چند گانگویی آموزه ها امام برای اینکه اصحاب لونرند مجبورن گونه های مختلف یعنی تقیه آم یا بحث نسخ احادیث احادیس یونسخ كما یونسخ القرآن یا بحث قضایه شخصیه حکم ثانوی اینها همه چیزایی هستن که باعث میشه که علا اینکه روایت از معصوم تادر شده با همین الفاظ و دقیقا به همین معنا ما نتونیم بهش اخص کنیم و فقیه در عمل به حدیث دستش بسته میشه این هم یه داستان جالبی از زراره که حدیثی رو سوالی رو از امام حضرت پاسخی میده بعد زراره خوشحال میده مثلا گوشه‌ای بشینه اینو تایپ کنه تو گروه بذاره برای برادر بچه کوفه تایپ کرده اومده که ارسالو بزنه یه دفعه میبینه یه نفر از شیعه این اومد همون سوالو پرسید از حضرت حضرت یه جواب دیگه داد این متحیرمون ا چی شد اما به من یه چیزی گفت پیشون یه چیز دیگه تو همین تهیارش بود نفر سوم اومد همون سوال و پاسخ سوم زراره نتونست تحمل کنه زراره میگه آدم رندیه یعنی خیلی ذهن پرسشگر داره و عرضه میکنه بر امام جسارت داره و همین جسارتاش خیلی از معارف رو به ما رسونده یا فضای جامعه اون زمانو ما ترسیم کرده قلتو یاب نرسول الله رجلان من اهل العراب من شیعتکم قدموا یسالان فعجبت کل واحد منهما بغیر ما عجبت به صاحبه آقا جان من تقیه رو میفهمم اینو نمیفهمم اینجا کسی نیست که سه نفر هستیم سه تا شیعه توی محفل مثلا خصوصی این چیچیه من دیگه نمیدونم به قول قومی ها حضرت فرمود یا زراره این نهازا خیر لنا و ابقالنا ولکم میخوایم بمونیم شرط اول اینه که بمونیم این ما رو مندگارتر میکنه ولو اجتمعتم على امر واحد حالا اگر شما یکسان عمل کنید لقصدو کمون ناس یا لصدق کمون ناس اگر یکسان عمل کنید شناسایی میشید و لکان اقل بقائنا و بقائکو منو میزنند. توی قضیه شکلیری فتحیه و آغاز امامت امام کازم علیه سلام حالا یک داستانی داره خیلی فکر میکنم گزارش ذیل مزخل هشام ابن سالمه حشام یه باید داستان نقل میکنم یه خدمت امام کازم رسیدیم بعد حضرت اه... کرامات و مجزاتی رو بروز دادن که ما متوجه شدیم امام امامه نه عبدالله افته بعد گفتم آقا جان میتونیم بریم به مردم بگیم حضرت اشاره کرد به گلوشون فرمود که از زبح میکشنمون نباید چیزی بگید خب این فرایند است که شما باید ازش گذر کنید تا به یه حدیثی برسید که بتونید بهش عمل کنید به این فرایند چی میگن بهش هم حجیت گفته میشه قبلتر و الان مدتی است با واژه اعتبار سنجی معمولاً ازش یاد میشه. اعتبار سنجی یعنی اضافه مقلوب سنجش اعتبار کتابخانه خانه, خانه ی کتاب در واقع فرایند رسیدن به حدیث معتبر این فرایند چهار مرحله ایه. البته با انقللتقلد های درونی داخلش صحبت ها و اختلافاتی هست که بهش نمیپردازیم. خب، دوستان پس اگر گفتن آقا اعتبار سنجی یعنی چی؟ ذهنمون سری نره سراغ صدور. آقا این مز... از کلام از متن صادر شده یا نه؟ نه. صدور خیلی کچی که در مقابل با باقی مراحل این فرایند. ما مثلا تو بحث فهم صحیحه مد روایاتی رو داریم به خاطر بدفهمیدن حکم پیران علمای ما به جعل روایت. گفتن روایت از جلیات. در حالی که وقتی فرایند فهمو درستی میکنیم میبینیم جلیات نیست. اتفاقا تازه چه قدام زیباش. یعنی در واقع متوجه نشدن مراد معصوم باعث شده شما تو حجیت این رو از حجیت بندازید حالا میریم با این نگاه بریم سراغ کتاب تحذیب اول احکام یه کتاب فقه روایی و تقریبا میشه گفت بستر شکلگیری فقه امامیه هرچند ما تو دوره متقدم دوره قدما کتابی مثل کافی رو داریم ولی معمولا فقهای های ما نگاه ویژه و انایت خاصی به کتاب تهذیب دارن شیخ توصی در مواجهه با روایات مخالف میدونید که کتاب تهذیب کتابی است که شیخ توصی برای تصویرسازی مخالفت روایات کتاب رو تدوین کرد البته زید کتاب مغنعی شیخ مفید استادشون تو 28 سالگی کتاب شروع میشه یعنی شیخ در شیخ توصی در اون انفوان جوانی تازه وارد حوزه بغداد شده و میخواد کتاب مغنعه رو یه شرح روایی هم کنه به این خاطر این جمله ای که برخی بزرگواران مثلا میفرمان که مثلا شیخ اینجا متابقه فتواش این روایت رو برده. نه هنوز شیخ مفتی نیست قیمت داره هنوز در مقام افتاها نیست میخواد اون فتوای استاد شیخ مفید رو مستند سازی کنه فتوای شیخ رو تو مبسوط نهایی دید خب جناب شیخ توسی الله مقامه ایشون در مواجهه با روایات مخالف اول روایت موافق رو و یامنی بعد سراغ روایت مخالف حالا میخوان روایت مخالف رو از گردونه افتا خارج کنند اون فرایند مرحله ای تو ذهنتون بیاد اول احراز صدور حدیث از معصوم دستیابی به صحیح ترین مت فهم صحیح مت و کشف جهد صدور دقیقا هم بر اساس همین فرانده چهار مرحله عمل میکنه حدیثشو رو بردیم همین فرازی که شیخ اشاره میکنن دو بردیم و اما خبر و زراره فتریق و هلک علیه ابن حدید و ها و جدا لا لای و اول و فرد و به نقله اشکال سندی مطرح میکنن می که علیه ابن حدید درست حدیث زراره است ولی به طریق علیه ابن حدیده و علیه ابن حدید بسیار آدم کلام قابل نقدیه. ولی شیخ برای کنار گذاشتن روایت میره تو گام اول. اون احراز سدو رو داره میزنه. توی بعضی جاهایی دیگه از ابزار دوم استفاده میکنه. یعنی دهستی به ترین حالا شیخ میخواد بر اساس همون روایتی رو کنار بذاره. کیفه یوم العمل الامل و الاهاده مع و اختلاف الفاظها ها و تضاد معانی لعن بعضها يتضمن و ذکر القامه و بعضها فلان و بعضها فلان هذه و ها دهی مقادی رو مختلفه دقیقا به اون تفاوت نقل های روایت اشاره می کنه و می خواب وسیله این برخی از اینها رو کنار بزنه تو برخی از موارد شیخ میان با تغییر در معنای حدیث حدیث را از گردونه افتا خارج میکنه. تو بحث تهارت و وضوع با گلاب می فرامد لحتمالا یکون اراد به حدیث امام فرمود که اشکال نداره با گلاب وضوع بگیرید و قصف کنید برای نماز ایشون می مم... منز... ممکنه منظور راوی از امام که از امام پرسیده اه... یجوز و به ما الورد الوضوع الذي هوا تحسین آقا جم با وزو با گلاب میتونم وزو بگیرم منظور از وضو نه اون که باش نماز میخونن وضو یعنی تحسین یعنی آراستن معنای لغویشه که از معنی لغویش به معنی آراستنه به همین خاطر این حدیث دلالت بر جواز تهارت با گلاب نمی کنه از گردونه خارجش کرد با دستگاری توی فهم من و اما یه نمونه چارم برای مرحله چارم خودمون فراوان هست فعاظ الخبر مهمون ال تقیه راوی نراوی وحب ابن وحب وحب آمیون خب کشف جهت صدور نمیخوان بفرماید که این رواست سادر نشده یا واژگانش این نیست یا معنای این نیست نه اصلا تقییتا از امام سادر شده دوستان حالا شما بر اساس همین خودتون حالا توی اندیشه های فقیه عزت آقا قور کنید با همین موارد آشنا میشید میبینید مواجه میشید که برای کنار گذاشتن حدیث لازم نیست که یک فقیح بیاد حتما بگه این حدیث جلیست پس من نمیتونم اگر جلی نباشه پس من عمل کنم نه اصلا یه فرایند چهار ای پیش روی یک فقیه قرار گرفته و اما انشاءالله آخرین نکته مقدماتی قبل از ورود به اصل بحث اینه که بله ما اینجوری چیدیم که یه مقدار برای کسی که اولین بار با این مواجه میشه زهن، تو ذهنش یک نظم منطقی شکل بگیره ولو نه و اما آخرین نکته مقدماتیمون ما با یک واقعیت تو رجال شیعه تو حدیث شیعه روبرو هستیم اینه که ما با یک اعتبار سنجی بزرگ تو حدیث شیعه این رو پشت سر گذاشتیم برخلاف اهل سنت که از اون اولی که کارشون رو شروع کردن تا آخر تا همین الان تکلیفشون با خودشون تقریبا مشخصه آقا یک راوی هست و سند هست و جرح و تعدیل ولی شیعه یک دورانی رو پشت زرگداشت تو دو دوره اصر حضور دوران محدثان و فقه های متقدم و از آغاز دوره متاخلین در حوزه حله با یک فرایند متفاوتی رو شد تو این زمینه بحث بس خیلی فراوانه حداقل پنج جلسه بحث نیاز داره. فقط برای این که بدونیم وا این مسئله این چرخش اعتبارسنجی این تغییر فراینده اعتبارسنجی مسلمه یک جمله ای را از یکی از مدافعان نظام سند. جناب آشیخ حسن پسر شهیده ثانی اهلالله الله هما به قول عدیمی از صاحب معالم یا صاحب منتقا منتقل جمعانم کتاب فقیشه فقه روایی ایشون جمله‌ای رو دارن تو مقدمه اول کتاب منتقل جمع یه جمله خیلی بحث برانگیز و روشنگره میفرماد فَإِنَّ القدما لَا علم لَهُمْ بِهَا اصطلاح قطعا آقا جان نظام سند مهور چهارگانه صحیح حسن موسق ضعیف این نظامی نیست که از ابتدا بوده مسلمن قدمای هیچ خبری نداشتن از اون اتفاقاتی که در قرن هفته بعد رقم خورد لاستغناهم عنه في الغالب بكثره القرائن دلاله على صدق الخبر وان اشتمل طريقه على ضعف بخاطر اینکه قرائن به قدری فراوان بود قرائن اطمینان بخش اطمینان بخش دوستان به چی ندیگه به حجیت همون فرآیند چهار مرحله ای صدور مشکل ما رو حل نمیکنه شما اثبات یه شده بازم نمیتونید عمل کنید کل اشکالات سندی که شیخ توسی توی تهذیب میگیره و حدیثی رو به خاطر ضعف در سند میذاره کنار چند دونه بیشتر نیست در حالی که چند هزار حدیث رو میذاره کنار پس قرائن دال بر صدق خبر صدق خبر یعنی حجیت خبر قرائنی می میومد تو تمام فرایند اعتبارسنجی قدرتش رو به نمایش میذاشت فلم یکن لسهی تا آخری من تو خودتون بعدم بخونید انشاءالله خب بر اساس این مسئله این واقعیت حدیثیشیه با چالش روبرو شد مکاتب اعتبار سنجی به وجود اومد مکاتب فراوانی به وجود اومد در طول تاریخ و در اصر حاضر یک ویژگی خاص در اصر حاضر دوستان بدونی جالبه هر اتفاقی که تو این تقریبا دوازده قرن اتفاق افتاده هر اتفاقی که رخ داده، هر فکری که ایجاد شده، هر مکتبی که مدتی سردمدار بوده و حتی از گردون خارج شده الان همشون برگشتن. میگن مثلا آقا در قرن نو یه نفر یه نظر داشته. قبل از اینکه چیزی همشه از دنیا رفت مثلا یا اصلا نظرش برگشت گفت نه دیگه اون نظر رو ندارم. می‌بینی الان یه نفر همون نظر رو داره. واجی نا کجا پیدا کردی؟ خیلی اصل جالبیه. و واقعاً من به دوستان زیاد میگم ببر... یعنی حدیث بعد از انقلاب اصلا قابل مقایسه با حدیث پیش از انقلاب نیست حدیث پس از انقلاب رشد کرد اینی که یک بستر امنی ایجاد شد برای ابراز همه دیدگاه ها به خاطر امنیت این بستر. به همین خاطر میرن همه الان اینجا وسط هست خود قدما مثلا قبل هم آقا قدما اینو میگن متاخرین اینو میگن الان دیدگاه های قدمای متفاوتی وجود داره. یعنی ما چند نفر قدمایی دارن فکر میکنن هر یه جور تق... یه تقریر داره. خلاصه دوستان این چرخش این تغییر مسیر باعث شد که ما الان با مکاتب مختلف روبرو رو بشیم. اعتبار سنجی های مختلف در مواجهشون با دانش رجال دو تا مسیر عمده دارند. یک برخی هستن میگن آقا جان رجال دانش رجال تک مؤلفه اعتبار سنجی است و متعبدند به سند هر چی سند گفت البته ذهنتون از اون سند منگوله و مشاه و تکبر در بیارید سند یعنی سند حدیث هرچی سند حدیث گفت و متعبدند به سند اگر سند نتونست اطمینان ایجاد کنه حدیث باید کنار بره و برعکسش هم اگر سند ایجاد اطمینان کرد ولی فقیه با چالش هایی تو عمل روبروست میگه من متعبدم باید عمل کنم چرا چون سند یک سنده صحیح با حضور راویان سقه پیش روی من هستند. من چجوری اینو کنار بذارم؟ در مقابل این گروه که خب این گروه تبلورش ایجادش تو حوزه هی است و تبلورش تو حوزه جبلامل توسط شهید ثانی و آشای خسن توی شیعه ایجاد شده و در مقابل گروه هستن که که تقریبا خیلی تو این بخش حضور دارن دانش رجال رو قبول دارن دانش رجال یک ابزار قابل انکار نیست که بگید من رجال رو قبول ندارم حتی اخباریونی که تو ذهن ما هست که اخباریون منکر رجال بودن خود اخباریون کتاب های اصلی هستن در واقع نهزت رشد شکوفای منابع رجالی ما از دوره اخباریون ایجاد میشه حتی خود اخباریون هم کتب رجال دارن اصلی ترین اصلا اون منابع رجالی ما از دوره اخباریون به بعد تدوین شدن و جالب مریهم وحید بهبهانی وقتی میخواد نگاه جدید قرین محور رجالیشو ابراز کنه و به جامعه علمی هدیه کنه چیکار میکنه میره کتاب منهج المقال مرحوم استرابادی رو میاره و رو به صورت تحلیق زل اون ارائه میده خب تو این نگاه میگن آقا جان رجال یکی از ابزارهای یکی از بازوهای یکی از معلفهای اعتبار سنجه حدیث رجال همه کاره نیست و بیکار هم نیست خب معمولاً این رو با این وان موسوق و صدور ازش یاد میشه و معمولاً تو ذهن ما هست که از آیت الله برو جردی رحمت الله علیه به این طرف این نگاه به خاطر جایگاه ایشون تو حوضه بیشتر ایجاد شد و در واقع رشد پیدا کرد و تا عصر حاضر هم از الان به بعد دوستان بحث ما تازه میخواد شروع بشه اینه که اول از همه قبل از اینکه ما وارد مبانی و دیدگاه های رجالی رهبر معظم انقلاب حضرت آقا بشیم اینه که بدونم آقا تو کدوم ور ماجرا هستند. تعبده به سند. یا استفاده از سند تعبده به سند یا وسوقه به صدور با توجه به فرمایشاتشون و نوع مشه فقیهانشون در مواجهه با احادیث، این مشخصه که مبنایشون قرینه مهوریه یعنی وسوق البته با تمرکز اصلی بر اسناد حدیث. تو همین خود نظام قرین محور ما تقریرها و دیدگاه های مختلفی رو داریم. یعنی اگر بخوام شما این رو حساب کنید شاید چهار پنج نوع نظام سنجی زیل قرینه محور شکل می گیره. حالا یک بحث مستقلی است با عنوان جریان های اعتبار اعتبارسنجی حدیثی یعنی اصر حاضر امروز من طلبه تو فضای هستم که اعتبار سنجی‌های مختلفی هست اینا چی چی هر کدوم چی میگن هر کدوم از ها؟ مبناشون چیه ارتباطشون با هم چیه کدوم قابل نقد ترن کدوم قابل دفاع تره یه بحث مستقل یه نشاط علمی مستقله که چیز خوبیه به صورت کلی مبنای حضرت آقا قرینه محور بودن البته با تمرکز اصلی بر اسناد، برخی هستن اسنادشون کم رنگه، برخی از فقها اسنادشون برخی اصلا سند رو حساب نمی‌کنند. نه اینکه رجا رو قبول ندارن، نه. این بررسی و ارزیابی سندی رو قبول نمی‌کنن. و خودشم عرض میکنن مختلفه. بفرمایید. همه اینجار مرحله قبول دارن فقط بحث اینه که از رجال چقدر استفاده می در این که رجال کارایی داره شکی نیست کسی منکر رجال نیست ولی استفاده از رجال یعنی در واقع چه بستری چه مقدار این دوتا سوال باعث میشه که فقه ها با هم متفاوت بشن و دوستان اگر این نکته جالب اگر بگم اصلی ترین علت اختلافه فتاوا، اصلی ترین علت ایجاد مکاتب فقهی، مکاتب حدیثی بگیم اصلی ترین چیست خیلی بیشتر از اینکه قواعد اصولی تأثیرگذار گذار باشه قواعد رجالی، مبانی رجالی تحصیل گذاره اصلا جالبه شما آقا مکتب فلان مکتب وهمان برمیگردی میگردی میبینید که تو بحث فهم روایت بیشتر تو دورهای قبل نه از بحث مثلا تو فهم روایت نقطه نظر خاصی حاکم نیست اون چیزی که باز شده مکاتب مثلا حوزه کوفه از بغداد بغداد از قوم قوم از جبل آبل، جبل آمل با حله حله با دوره بعد متفاوض نگاه نگاهی اعتبار سنجانه است و نقطه جالبتر اینه که تو اون فرایند چهار مرحله ای نه تنها گام اول گردن رجال فقط نیست و این منحصرا گردن رجال نیست و ابزارها و دانشهای دیگه ای دارن کار انجام میدن مثل دانش نقل حدیث دانش درایۃ الحدیث دانش فهرست اونها هم توی صدور دارن کار میکنن نه تنها گام اول فقط گردن دانش رجال نیست کارای دانش رجال هم فقط اولی نیست رجال تو گام های توی مراحل بعدی هم تأثیر گذاره یکی از اصلی ترین مسیرها و راه های پی بردن به مثلا تقیهی صادر شدن چیه؟ ویژگه های راوی این قضیه شخصی است از کجا میگید؟ میگید راوی فقیه نیست فقیه بودن و نبودن راوی از کجا در میاد؟ منابع رجالی. دستیوی به سیتر متن حددث منابع رژادی کان او سقل و اثبت هم سقتون ستون تممدن فی نقله غیر مع تممدن فی حدیثسه مستبان فی نقله رددیول اللفاز این تبیری است که شما رو تو دستیایی به متون حدیثی کمک میکنه خب تو این بحث که حالا میخوایم وارد بشیم از اینجا به بعد تازه بحث, بحث اصلی انشالله شروع میشه در تبیین این نظام که قرینه مهوری و نه بسندگری به داده های منابع رجالی در ارزیابی اسناد حضرت آقا فرمان، من این جمله رو که هر از گایی جمله حضرت آقا رو میارم هر از گایی قبول خبر واحد موسوق بهبودن صدور روایت است یا این موسوق از راه راوی به دست می و یا از قرائن به دست می آید. البته در از تقریرات آقای خویی فقط ووسوق از راه راوی در قبول خبر واحد در نظر گرفته شده که ما این تقریر را قبول نداریم خب میدونید که اشاره فرمودن جاقا که بحث حوزه قم و نجف خب تبلور حوزه نجف تو بحث اعتبار سنجیشه و اینجا خب اون مخالفت سریح وجود داره زیرا ممکن است درجهای ووسوق به راوی نباشد اما چون از قرائن وضوغ به صدور روایت از امام پیدا می شود لذا به روایت عمل می شود مثل مرسلات ابن عبی اومیر می که مرسل در نظام اعتبارسنجی سند هر هرچی باشد ضعیف است یعنی مرسل بشه ابن عبی اومیر مرسل بشه احمد عشعری یا مرسل بشه یه فرد عادی فرقیم نباید باشه متصل از هو به, المحص... به نقل عدل امامی و مستلی فی جمعیت طبقات متصل سندو و شرط اول حدیث صحیح اینه وقتی متصل سندو نشود فهوا مرسلون فهوا ضعیفان به ای نهب کان خب اصل کار دیمه دعوا این قرار ما اشاره میکنیم ان خب آقا وثوق یعنی چی آقا مثلا من اینجا وضوق پیدا کردم میگه هنوز من نکردم هنوز وضوقم نایمده نه نه یکی از در واقع فرازهای برجسته دیدگاه حضرت آقا در بحث اعتبار سنجی اینه که رو میذارن رو وسوق نوعی نه وسوق شخصی دقیقا همون اندیشه شیخ انصاری رحمت الله علیه شیخ انصاری هم وقتی بحث رو از بحث حجیت خبر واحد با... تو بحث حجیت خبر با... از این بحث های مرسوم توی حوزه خارج میکنند و بحث می رو میبرن رو وسوق دقیقا انگاش میزن رو وسوق نوعی راهی که نوع وسوق زاست اطمینان زاست نه اینکه آقا مثلا من از این اعتماد پیدا کردم میگه نه من پیدا نکردم نه قراین ایجاد میشه که وسوق نوعی بیاره ایشون میفرمان مضمون این روایت در موارد متعددی با قواعد کلیه تطبیق نمی کنند. یه بحثی زیره که از بحثای فقهیست و همین هم رایز می وصوق انسان به روایت کم شود چون ملاک عمل به روایت وصوق است. خب حالا سوالی که تو زن شکل می گیره آقاین قرائن اطمینان بخش اینا چی چی ها هستند؟ ما تو اینجا چند تا اون مقداری که بهش دسترسی داشتیم و پیدا کردیم توی فرمایشات ایشون یا بقیه دوستان گردآوری کرده بودن رو خدمت تو نمایش می دیم. اولین قرینه اطمینان بخش به حدیث دوستان اطمینان بخش به دوباره ذهن رو از اون صدور خارج کنید که فقط دعوا سر صدوره بحث سر حجیته یعنی اجازه عمل اجازه عمل معذریت و منجزیت اولش وساقت راویس که مهمترین میاره به همین خاطر میبینید که بحثای رجالی بحثای سندی در نظام فقیه حضرت آقا خیلی جریان داره حالا حقیق که تالا توفیق نداشتم شرکت کنم در محضر درسه ایشون ولی بقیه دوستان که می مثلا می گفتن آره امروز سومین روزی بود که فلان بحث فلان راوی مطرح بود و مفصل از آتا آقا بحث کردن جالبه حتی گاه اوقات دوستان می گفتن که مثلا یه نفر از مثلا دیدگاه های فلان مرجع بزرگوار رو اوورد که مثلا در این زمینه ایشون نظرشون اینه و عدله اووردن بعد از رو آقا یکی یکی بعد فردا دوباره کسی دیگه مطلب می دوباره میخوندند صحبت میکردن دفعه سوم یه بار از آقا فرمودن یه بحثی رو روز سارا سوم یا چهارم که مطرح شد فرمودن چه بحث با برکتی بود چه مطالب خوبی اومد از طرف دوستان و ایشون خیلی خرسند بودن فرمودن یک متن اومده حقیقتا بنده را خوشحال کرد که مثلا چنین متنی اومده علاوهم این که ارزیابی سندی یکی از ابزارها و معلفهای اعتبار سنجی و یکی از قرائن اطمینان بخش به حدیثه ولی جایگاه ویژه داره بحث استفازه حدیث بحث شهرت روایت هم شهرت روایی هم شهرت عملی هر دو شهرت عملی اصابها بشاره کردم ذکر روایت در کتاب یا اصل معتبر حالا انشاءالله فردا بیشتر با اینا ملموستر در رابطه با راویان خاص مشخصتر مطرح می کنیم که مثلا آقا درباره باره سهل رمزیر می فرماد سهل گرچه تضعیفات فراوان داره و واقعا نمیشه از پس تضعیفات بر اومد ولی کلینی داره یه نهادیس رو میاره کان او سقنناس و اسبت هم او سقنناس کلینی به خاطر اینه که این روایت در این کتاب به این اتقان اومده اعتماد میشه. یا همون بحث علو و مزمون عظمت مطالب مطرح شده در حدیث این از جمله قرائعی نیست که توی اطمینان به روایت تاثیر گذاره. خب حالا میخوایم وارد خود دانش رجال بشیم. که ضرورت دانش رجال رو یه مقدار بیشتر برامون ملموس بشه. من قبل از اینکه فرماشه از اتوار تو تیکر از فرماشه ایشون پیدا کردم خدمتون ارائه بدم شاید یکی از قشنگترین ضرورت سنجی هایی که تو طول این قرون تدوین شده و ابراز شده عبارتی است که مرحوم علامه حلی رحمت الله علی در مقدمه خلاصۃ الاقوال میفرمان میفرماض اما بعد فَإِنَّ العلم به حال روات علم به حال روات یعنی راوی شناسی من اساس الاحکام شرعیه پایه فقه چه نگاهی رجال پایی فقه و علیه تطبتن القواعد السمعیه و ادله و نقلی مبتنی است بر این حالا ادله نقلی دو تا دو گونه میشه تفسیرش کرد ادله نقلی یعنی روایات که عمده ادله نقلی ما تو بحث فقه روایاتن یا اینکه نه حتی ادله فقاهتی قواعد فقهی که همش بر گرفته از روایاته قواعد اصولیش که خیلی ریشه در روایات داره و گاهی اوقات با رد روایت یه قاعده عقلی رو میذارن کنار میگن ما چی می گفتید عقلیه روایتش که زیرا بهش خورد روایت رفت کنار می یه اطمینان نداریم عقل انقدر قدرت نداره یه کلامی دارن شهید صدر می فرماد که ما قبول داریم که عقلی که, عقلی که از ادله شرعیس و قدرت استخراج حکم شرع داره ولی ولیکن لم نجد حکم واحدن یه توقف و اثباته علا دلیل العقلی به ها معنا میگه قدرتمنده ولی متاسفانه آب نیست شنا کنه. خیلی شناگر خوبیه. ولی برید بگردید یه دونه حرف. حکم پیدا نمی که عقل رسیده باشه بهش. و علیه تبتن القواعد و سمعیه برمی گردیم کلام علامه هلی. بعد می فرمان یجب و علا کل مجتهدن معرفته و علمه هر مجتهدی هر کسی که گام در مسیر فقاهت گذاشته واجب است که علم پیدا کنه به رجال و راوی شناسی. و لا یجوزو لهو و جهلو. نشودنیست فقاهت بی راوی شناسی از اکثر احکام تصفاد منل اخبار نبوی و روایات عن الائمه المهدی علیهم صلوات الله آقا جان فقه ما فقره خیلی زیبا جالب الان خیلی بعضیا هستن تصور میکنن که خب ما که در محضر رجال دو شب حضور داشتیم شب امتحانی پای 8 و نوه. معمولا هم خب بالاخره با تلخیص های موجود که استفاده میکنند و با همین اندوخته عظیم که معمولا میگفت که تاریخ انقضاش پله های امتحانیست که داره برمیگرده بعد از اون دیگه تموم میشه میره سراغ فقاحت علامه میگذر است. خب حضرت اقا یه جمله جالبی دارن بفرماید برای استنباد چاره ای ندارید فلابده یعنی انگاری که عبارت اخرای خیلی زیبا چاره ای ندارید جز این که در رجال صاحب نظر باشید چاره ای نداره جز این که در رجال صاحب نظر باشید نگاه کنید یه سوالی که همیشه ذهن طلبه ها رو درگیر میکنه کنه که با رجال تا با ولایت تا شهادت با رجال تا من باید چه مقدار رجال کار کنم من باید مثلا مشتهد بشم من باید صاحب نظر بشم من باید نه مثلا یه, یه کتاب رجالی خونده باشم حضرت می فرمون باید, باید صاحب نظر باشید ولی و مشتهد متبهر هم نباشید ولی بالاخره باید خودتان تشخیص بدهید که آیا این طریق درست است یا نه من توضیح بدم نه نوشتم نه سر کردم تویش کنم تاریخ نیارم آره اصلا سعی کردم بیشتر به معاصر تر بشه تو مسئله گاهی اوقات مثلا یک مسئله میدم چون حالا بعد جلسه فردایش رو مواجه میشیم با چرخش های دیدگاه خب باید دیدگاه جدیدتر اعمال بشه <تصفيق> الان عرض میکنم این توضیح میخواد گاهی اوقات ممکن شما از این به این نتیجه برسید که آقا منظور آقا اینه که همه باید مشتاق رجال بشیم صاحب نظر یعنی چی یعنی پی اچ رجال مثلا به قول امروزی ها یعنی آخر کمالات رجالی با توجه به این فراز اخیر که میفرمم آیا این طریق درست است نه منظور حضرت آقا رو من توضیح بدم نه اینکه هر نفری در همه فروعات فقهی فروعات رجالی باید صاحب نظر بشه مثلا درباره تمام توصیفات آم مبناش رو انتخاب کنه درباره تمام مظلات سندی اینجا مبنا اتخاذ کرده همه گیروغورهای راویان دستشه نه کسی است که قدرت صاحب نظر شدن تو هر مسئله ای که به خاطر داشته باشه یه مقدار به قدری کار کرده که حالا میخواد این سند رو تحلیل کنه این راوی رو ارزیابی کنه میگه من تا الان روی رو راوی کار نکردم ولی تا فردا به اجازه بدید من به نظر برسم نظرمو خدمتون بگم منظور اینه یعنی مقدمات لازم و مهارت کافی و گستره اطلاعاتی مورد نیاز رو کسب کرده باشه برپایی اون بتونه هر وقت نیازش استفاده کنه منظور اینه این مقدار رو کسی بگه نه واقعا قابل پذیرش نیست حقیر حالا توفیقی هست که با برخی از فوقه گرچه خودم وقت توفیق نبوده و اصلا در این حد و اندازه نیستم که بخوا ای داشته باشیم ولی خب به صورت مکتوبات یعنی با وساطت بس برخی از دوستان نقد دیدگاه ها یا مثلا پیشنهادی درباره باره فلان مسئله رجالی داریم با برخی از فوقه های معاصر متاسفانه باید گفت برخی از بزرگواران یعنی خیلی پرتند از ماجرا برخی از فوقه های معاصر زنیتون سراجه جای کسی نراشت اصلا نشناسید شما فقیه در خارج داره داره کار میکنه و بعضی است اصلا ذهنیتشون یه جوریه که من مثلا قایقات تا یک دقیقه حنگم این جمله یعنی چی؟ یه جمله‌ای مثلا شنیدم که ایشون یا گاهی اوقات از شفاهی هم بوده مثلا مباحثه کوچیکی بینمون بوده این واقعا قابل پذیرش نیست چرا چون که علیه تطن القواعد السمیه فقه روایی بر پایه راوی شناسیه میگه میشه راوی شناس نباشید و بخواد بری تو فرآیند فقاهت یه جمله دیگه هم بخونیم در تشخیص سند نمیتوانیم این است که معمولا ما ها بهش اتکا میکنیم من یادم میاد سال فکر کنم 56 اون بودیم میخواستم برای ما کلاس رجال بذارن سال 78 79 اون وقتا مثل الان نبود انقدر اصلا یعنی منی ای که این دو دوره رو تو این 24 5 سال تجربه کردم گویی که مثلا دو تا کشور مختلفند به قدری این فضا متفاوته یادم یاد نمیدونستم رجال چیه اینکه بچه‌ای که یه سال از مبالا سر بود پرسیدم آقا رجال چیه گفت آقای خویی و ایناست این جمله ایشون نیمه نگاه کنید حالا من بیام یه مقدار عصر حاضر 5 سال پیش 6 سال پیش 6 سال پیش حدوداً یه کلاسی داشتم برای بچه های سال سوم یکی از مدارس علمی تابستون مدیرشون باجی بچهای من می‌خوام بران لمعه یه مقدار برای اینا بحثای حدیث و رجال اینا بگو که میگن تو روم اه اینجوری ذهنشون آک نباشه یه مقدار آشنا باشه من توضیح دادم آقا حدیث چی چیه حدیث یه چیزی داره اولش بهش میگن سند بگید مثلا سند اینجوری با این داشتم توضیح می‌دادم نه به این شکل توضیح می‌دادم حدیثی داره سندی داره یه دانشهایی اومده دور و برش کیگو ببخشید استاد تو بحث اعتبار سنجی شما تو بحث تحلیل فهرستی چه تفاوتی با نگاه قدمایی داره این فک من اومد پایین یه لحظه تمام این 20 سالی ای چشم من رو گذشت آقا بچه‌ای سال ششم که لمعه خونده میگه رجال آقای خویی و ایناست بچه‌ای سال سوم که تا اصلا فقر ندیده نگاه فهرستی رو خونده شنیده میفهمه نگاه قدمایی فرقش با نگاه متأخرین رو میدونه بعد بیرون کرد گفتم اینا چه من دوره فلانی بودم فلان بحثا رو خوندم خیلی عوض شده حوزه خب رحمت الله علیه در تشخیص سند نمیتوانیم به آراء دیگران تیکیه کرد اون زمانی که میگفت آقا ما هم دیدگاه های سیدان الاسداز رو داریم هرچه آقای خوبی گفت این دیگه نیست و به صرف این که فقیه حدیثی را صحیح یا ضعیف شه مورده تیکی کنیم دیگه نه خب دوستان ما الان می‌خوام ببینیم رجال چه موجودیه و مهورهای مطالعات رجال چیه چرا چون بحثهایی که مبانی و دیدگاهی حضرت آقا رو می‌خوام بر اساس این نظام خدمتون ارائه بدیم اول از همه یه تعریفی از دانش رجال ارائه بدیم دانش رجال فکر کنم منحصر به فردت توی اینکه توی داشتن تعاریف مختلف هیچ دانشی فکر کنم تو بشریت اندازه رجال تعریف نداره اصلا کلن دانش خوش تعریفیه و چه باسفاییه هر کی میاد صاحب نظر میشه اولین احساس وظیفهی که می‌کنیم که ما یه تعریفی ارائه بدیم تعریف مختلف میدونید به خاطر چیه حکایتگره چه واقعیتیه ابهام در موجود قضیه فیل مولوی رو دارید که هر کی خواست فیل رو تعریف کنه فیل چیه بر اساس اون نگاه ناقصی که به فیل داشت، دست به پاش، به خورتومش، به بدنش، به جاهای مختلف بر اساس اون یه تصویر ارائه داد. واقعا دانش رجال همینه. به خاطر نگاه کنید یکی از علتای اصلی همون تغییر کارکرداست. چرخش اعتبار سنجی قرن هفت و قرن ده ولی ما یک از تعاریف خیلی مختصر رو انتخاب کردیم. العلم ال به احوال روات الخبر تعریف کنید دوستان. به که دوستان گفتم تعریف کن. ترجمه کن گفت علم به احوال روات خبر گفتم ترجمه شد گفت مشخصه من خوشا هم این خوش عربی بود شما فارسیش کن علم بگیم آگاهی احوال بگیم ویژگی ها روات درست راوی بالاخره یک اصطلاح بگیم ها در راویان الفنون جمع فارسی فراش بزنیم خبرم یعنی حدیث یعنی آگاهی یافتن به ویژگی های راویان حدیث خب آقا چه ویژگی هایی خاندانشون های نمیدونم ظاهری میگه نه ذاتن و وصفن تو دو, دو تا محور ذات یعنی شخصیت هویت اطلاعات شناسامه ای ابن و من کنیه لقب قبیله شهر داده های تحصیل گزار در شناخت راوی و وصفاً وصف یعنی های شخصیتی مثلا آدم با شخصیتیه مثلا خوش نه متن و غتن ویژگی های گذار در پذیرش یا در رد منظور از محوقت یعنی پذیرش و رد روایات هرچی که موثره اگر دوستان ویژیگاه های تاثیرگذار رو بخوایم دنبالش برین می‌بینیم عمده توی سه تا محور جا میشن سه تا معلفه راوی شناسی ما داریم یک طبقه روایی. نگاه اشتباه نگاه ناقص به طبقه روایی چیه دوستان؟ از ااساب کدوم امامه خب آقا این چه بطتی داره حالا از اصاب امام صادق بود یعنی خوب از اصاب امام کاظم یعنی بعد چه فرق میکنه؟ میگیم نه طبقه خیلی وسیع تر از اینه طبقه به یک بیان یعنی کشف تعاملات حدیثی راوی الان مثلا میگن آقا فلانی چجور طلبه ایه؟ میگه نمیدونم ولی پادرس فلانی زیاد میره حالا فلانی هم یه آدم نیست که به فلان صفت شناخته شده میذاره. فلانی چجور استادیه؟ نمیدونم ولی شاگرداش همه آدم بی بیسوادی هن. یه شاگرد درستابی ندیدیم ازش تأثیر میذاره تو شخصیت کشف تعاملات پس طبقه تأثیر گذاره این ویژگی تأثیر گذار مذهب راویه که خب قابل پذیرشتره ولی ما میدونیم که فساد مذهب مثلا قبول نداشتن امامت امام رضا علیه السلام یعنی واقفی شدن اختلافاتی هست ولی خب باعث میشه برخی روایت راوی رو دیگه نپذیرن مثلا جناب علامه هلی اولین راوی که توی بخش دوم کتاب فی من اتوقف و فی او ارد و قوله کسیز که رو کنال میگذارم ابراهیم ابن عبدالحمید اسد، اسدی میگه وستقه و شیخ فلفهرست و انا اتوقف و فی روایته فترکت و روایته هول زالک میگه شیخ توسیقش کرده و قال اکه فضل ابن شازان انهو رجلون صالح فاز که معاصرشه میگه آدم نیکویی است یعنی قابل اعتماد است من میذارم کنار فترکت رو روایته او لزالک زالک به چی برمیگد؟ میگه چون واقفیست است پس مذهب هم تاثیرگذاره و سومین مؤلفه شخصیت راوی وساقت و ضعف که ما میشناسیم دوستان اگر بخوایم مؤلفه‌های راوی شناسی رو ارائه بدیم میگیم هویت طبقه مذهب به ساقت این چهارتا اون ذهنیت که دوستان ما تو رجال دنبال توصیق و تضعیفیم هستیم رو بذارید کنار گاهی یه یه متن رجالی دست فقیر رسیده من بیشتر فقه های معاصر و مازین رو بیشتر از این که درد کرده باشم من کتابشون رو خوندم مطالبشون رو خوندم خیلی خوندم دیدگاه های ها رو زیاد در جلیه مثلا نمیشه که فلان رجالی در مطالبی گفته ولی چیز خاصی نگفته منظور از چیز خاص یعنی توسیق نکرده سه تا داده طبق شناسی ارائه داده دو تا داده مذهب شناسی ارائه داده درباره داده های هویت شناسی که تو اسناد به کار من میاد دو تا نکته بسیار تمیز گفته و یک قرینه ی ارائه داده میگو کنید یک فقیه هفت تا معلفه راوی شناسی رو ندید به چه خاطر؟ به خاطر ازابت با این ذهنیت پیش اومده که آقا جان رجال یعنی توثیق و تضییف رجال توثیق و تضعیف نیست رجال هویت طبقه مذهب وثاقت ما معمولا با دوستامم کلاس رجال داریم میگیم دوستان بگید میخندن میگن بابا مثل زشته ما محت کودک نیستیم میگم بگید چهار بار پنج بار همه با هم صدا کم باشه میگم آقا نشد از اول میخندن و میگن میگم بخاطر اینکه اون ذهنیت از ذهنتون دور بشه خب آقا این تعریف، رو اگه بخوام یه کلام کنیم ال, ال به احوال روات الخبر ذاتن و وصفن متن و آقا اینو یه کلمه ای کن چی چی میشه میگه میگن یعنی راوی شناسی رجال یعنی راوی شناسی پس کار اصلی رجالی راوی شناسی است هویت طبقه به ساقت خب آقا جان راوی شناسی تو چه بستری رخ داده یعنی چه بستری داده های راوی شناسانه در آن درد شده میگی منابع رجالی پس به منظور موفقیت در راوی شناسی باید منابع رجالی رو بشناسید دوستان شناخت شناخت یعنی چی؟ نه یعنی آشنایی ما معمولا کتب که ما میخونیم برای رجال کتاب آموزشی ما تو مرحله عاشنایی این کتاب معلفش فلانیه ساختارش اینجوریه اطلاعاتش اونجوریه ما میدونیم که در ورود به یک دانشایی دست منابع ما با چهار تا لایه آموزشی روبرو هستیم یک آشنایی یعنی معرفی دو شناخت یعنی ورود به مت رو در روی مستقیم با عبارات سه تحلیل یعنی دستیابی به پشت پرده های تدوین مت و چهار نقد یعنی راستی آزمایی منظور دانش منظور آشنایی نیست منظور شناخت و تحلیل بعدش نقده یعنی باید وارد محطن بشید اگر کتاب رجالی نتونه تلبر وارد موتون رجالی کنه به درد نمیخوره اطلاعات میاد و میره خب آقا تو منابع رجالی پس من یه محوری باید داشته باشم من برشناسی <تصفح> تو منابع رجالی دوستان با چی رو رو هستیم با مصطلحات رجالی با تعبیر توصیفی راویان فراوان صدها تعبیر توصیفی میاد که بسیاری از اینها هیچ توضیحی تعبیر و مصطلح رجالی شیعه کلمه سقتونه این بالاخره واضح هست مشخصه میگیم نه آقا جان کجا مشخصه الان در قوم حاضر فکر میکنم چهار تا مبنات درباره باری های درونی سقتون هست مرحوم کلباسی توی قرن چارده هزار سی و یازده به نظرم وفاتشونه مرحوم عبالمعالی پدر کلباسی پدر یه کتاب دارن ار رجالیه به قول امروزی یا مجموعه مقالات رجالی رساله اولشون رسالتون فسقد 200 صفحه است درباره این سقتون واژه دیوی صفحه صحبت کرده پس بحث مصطلحات رجالی خیلی پیچیده است محور بعدیمون شد شناسی محور سوم خب آقا جان چجوری ما این مصطلحات رو تفسیر کنیم مفهومش رو بگیم بار معنایی و مؤلفه‌های درونیشو ش اصلا چجوری بفهمی باید به کی اعتماد کنیم به کی اعتماد نکنیم چه مقدار اعتماد کنیم به چه کتابی آری به چه کتابی خیر میگه اینا همه توی مبناشناسی مندرجه مبانی حاکم بر توصیق و تضعیف این نکتر هم تو پرانتزی بگیم جالبه ما با واژه‌ی جرح و تعدیل ما بیشتر آشنا هستیم با توصیق و تضعیف میگن مبانی جرح و تعدیل جرح و تعدیل دو واژه‌ی سنیانه است شیعه از اینا استفاده نمیکنه. شما تو منابع رجالی متقدم تو بین هزاران راوی یک نفرم پیدا نمی‌کنید دربارش گفته باشن عادلون یا عدلن یا تو می تو صرف می خوندیم می گفتیم گاه اوقات آها مستر می مبالغه باشه زیدون عدلون میگه آها چرا مثال سنی می زنید به بود زراره سقتون سقتون هم مستر اتفاقا مستر وسقهه مثل هبه، اده، سقه شیعه اصلا عدل به کار نمیبره باره توضیحش بماند شیعه به جای جرح میگه ضعف، به جای مجروح میگه ضعیف، به جای عدل یا عادل میگه سقه پس میشه مبانی توصیح و تذیف پس مبناشناسی هم یکی از محورای عمده و اصلی و حاکم و تاثیرگذاره گذاره و آخریش هم سندشناسیه آقا جان از راوی نه از اونجا اومده دیگه ما هم توجه نکردیم که و سندشناسی هم اینه که آقا جان مثلا من میدونم ابن ابی امیر این فرایند راوی شناسی رو تقیم میکنم میرم تو منابع بر پایه مبانی مصالحات رو مشخص میکنن میگم آقا جن هویت طبقه مذهب و در اومد ابن ابی عمر سغتون من اصحاب رضا و جواد علیهم السلام و مذهبش هم امامیون صحیح المذهب خب میرم سراغ اسناد میبینم توی سند رو مواجه شده با این سند ان محمد ابن زیاد بیاء صابری میرم میگردیم چرا راوی وجود نداره میگم هاذا راوین مجهول و هاذا سند ضعیفون میگه آقا صاف کن ابن ابي عمر اسمش چیه میگه ابن ابي عمر میگه ابن ابي عمر اسم میگه نگاه میگه محمد نام پدر میگه ابي عمر میگه ابي عمر که کنیه است نامش میگردیم ايه زیاد آقا چه بوده پارچه شاپوری میفروخته شاپوری تو عربی میشه صابوری بیا ايه محمد ابن زیاد بیا او همون ابن ابي عمر خودمونه اینو من از کجا بفهمم میگه تو یه سندشناسی پس یه محورم آقا به این میگن پنج مهور مطالعاتی دانش رجال ما بنامون اینه که مبانی و دیدگاه های حضرت آقا بر اساس این نظام تقریبا ارائه بشه البته تو بعضیش ورود جدی نداری مثل مستلح شناسی ولی تو بعضیش هاش مفسلتر بعضی کمتر حل میشه انشالله مثال زدم اورفی زدم مثال عینی نزدم مثال اینیش هم عرض میکنم چون وقت میگیره به کارمون می‌رسیم شخصی داریم مثل محمد بن ایساب بن عبید از آل یقتینه نجاشی دربارش میگه سغتون عینن جلیلون فی اصحابنا این بالاترین درجات وثاقت و اعتماد هزاران روایت هم داره یعنی توصیقات فراوان جلالت قدر و کسرت روایت و عمل اصحاب تا اینجا مشکلی نیست میگم ابن ولید ابن ولید قومی شیخ استاد بزرگ شیخ صدوب وقتی میرسه به روایت محمد ابن عیسی ان یونوس که اصلی ترین رابطهش با یونس ابن عبدالرحمن روایتو کنار میذاره آه این که ثقتون اینون کسی رو روایت جلیلون فی اصحابنا میگه به خاطر یک معلفه را شناسی میگه محمد ابن عیسی ابن عبید البته طبق تحلیلا محمد ابن عیسی ابن عبید در سن استاندارد برای اخذ حدیث از یونس ابن عبدالرحمن نبوده یعنی یک ابهام طبقه شناسی مانع از پذیرش روایات منفرد محمد ابن عیسی از یونس وثاقت داره مذهبش هم مشکلی نیست داده های هویت شناسیش هم گیری نداره طبقه حزده زمین تاثیرگذاره خب میرم سراغ محور اول منبع شناسی رجال تو اینجا چیده خاصی براتون آمده نکردم یعنی چیز خاصی نیست علت چیه؟ یه نکته جالب پیش از انقلاب اسلامی تقریبا نیم قرن پیش یه کنگری برای شیخ توسی برپا شد حضرت آقا یک کتاب می نسن با عنوان چهار کتاب اصلی علم رجال که البته دو تا کتاب رو فهرست توصی و رجال کشی رو توش تبگیل می کنند و به صورت عمیق به کتابشناسی توصیفی تحلیلی این دو تا کتاب میپردازم میفرمان که فهرس نجاشی و رجال شیخ در تته ان خواهد آمد که دیگه ظاهرا توفیق نشوده و الان هم کتاب چاپ میشه و همین دو تا کتابو معرفی کردن و نکته جالب اینه که توی دانشنامه جهان اسلام جلد 19 مدخل رجال کشی به قلم حضرت آغاست است میدون که قلم دایره العلماء با قلم پژوهش و کتاب و مقاله کاملا متفاوته خیلی جالبه خیلی معمولا بچه ها نمیدونن. ایشون تو این کتاب دیدگاه های من و شون رو ارائه فرمودم بسیار منی که میخونم ترجیح میکنم. من این کتاب رو وجودم مثلا 20 سال پیش که خوندم. که این بحث هیچ که مطرح نیست این دقت نظر از اون ترجیح 20 سال گذشته. الان هم نگام میکنم میبینم که خیلی هنوز جریان این بحثان نیستن. نمیخوام بگم همش کاملا پذیرفتنی نیست قابل نقد نیست که چون حرفی زده نمیشه. ولی واقعا دقت نظر ستودنیست برای الان نه برای پنجاه سال پیش پنجاه سال پیش واقعا عجیبه و یه قلم عجیبی هم داره نمیدونم حالا بخونید سال فکر میکنم پنجاه و سه اگر اشتباه نکنم یعنی دقیقا پنجاه سال پیش ایشون توی برخی از مباحث تو بحث تعارضات شیخین شیخ نجاشی و شیخ توصی دو رجالی بزرگ شیعه ایشون معمولا به صورت قاعده اولیه یعنی ما باشیم و فقط دو تا نقل قول متفاوت نجاشی رو ترجیح میدن بارها از این استفاده کردن ولی تو نهایت میفرما قرائن حاکمه به صرف اینکه که چون که نجاشی گفته پس همیشه و حتما برتری داره نه این هم دوباره نگاه اون قرینه محور حتی توی لؤلؤهای مباحث رجالی هم حاکمه یعنی حتی همه شیعه میدونن نجاشی از توصی بالاتر تو مباحث رجالی هفت تا دلیل بر تفوق و برتری مرحوم نجاشی بر مرحوم توصی ارائه شده ولی ایشون حتی انجام نگاه قرینه محور رو حاکم کردن و آخرین نکته ای که من الان داوری کردم خدمتون کم اعتمادی به های ابن قزائریه ایشون تذیفات ابن قزائری رو میارند ولی میفرمات خیلی اعتماد نمیکنم ما میدونیم تقریبا 6 تا نظر در رابطه با دیدگاه‌های ابن غذایری تو شیعه علما شیعه مطرحه این وره ماجرا برخی میگن این کتاب نه تنها مال ابن غذایری نیست بلکه از دسیسه های دشمنان شیعه است که معارف ما رو نابود کنه چه نگاه تخریبی شدید از این طرف بعضی قائل به این هستن که ابن قضائری فنی‌ترین رجالی شیعه است و این کتاب مال خود ابن قضائریه خیلی فاصله هست این بینابین این دیدگاه رو شما می‌بینید که از یه طرف استفاده میکنند از یه طرف اون نگاه قرینه محور دوباره اینجا حاکمه خیلی اعتماد نمیکنیم یعنی چی؟ یعنی پذیرشش نیازمند پشتیبانی قرائنه اگر قرائن پشتیبانی نکنه یا برعکس مثلا ما تضعیف ابن غذاری توصیق شیخ رو داریم اینجا عمل نمیکنیم و می‌ریم سراغ محور دوم مبانی توصیق و تزیف راویان. مبانی توصیق و تزیف راویان یعنی نگاه های حاکم بر دیدگاه های رجالی دیدگاه رجالی برآمده از یه سری مبانی است سعی کنیم اینها رو جماجور کنیم از فرمایشات ایشون یا زحمت دوستانی که تو دو این زمینه تلاش کردن و گردآوری کردن نکاتی رو گرد آوردیم بگی بگیم مبانی رجالی فقط همین نیست که ارائه شد اون مقداری که به دست آوردیم. دوستان یکی از اختلافات بزرگیه و اون چرخش های بزرگیه اعتبارسنجی که حوزه هله ایجادش کرد دقت کنید تعامل سلبی شدید با روایات راویان سقه فاسد المثبه راویان توصیق سریح دارند ولی زیدیون سقتون زیدی فتحی ثقه سقه واقفی یون سقه ناووسی یون سقه. یون سقه. اصلا بالاتر آمی یون سقه. کسانی که تا توصیق شدند، رجالیون اینها رو توثیق کردن، علارقمی که تأثیر کردن به فساد مذهبشون و بزرگان ما، محدثان ما، فقهای ما روایتشون رو در حدیث و جاری کردن فراوان، هزاران روایت از برخی از اینها هست. حوزه حله، مرحوم ابن عدی سحری رحمت الله علیه اولین بار عمر جلوی این یک صد محکم ایجاد کرد. مثلا شخصی به اسم اسماعیل بن بی زیاد سکونی، یه راوی اختلافی که سنی بودنش محل بحث و مشهوره شیخ توصی در عدت الاصول کتاب و اصولیش میفرماد که ما در مواجهه با روایت راویان سنی این گونه عمل میکنیم ولی اجل ما قلناه عملت طائفه به اخبار سکونی با دو تا شرط ادعای اجماع میکنه بر عمل به روایت سکونی و توی شیعه فراوان سکونی حضور داره بنظرتون ابن عدیث درباره سکونی چی میگه میگه و روایت و سکونی کافرون ملعون خیلی فرقه یعنی انگاری مثلا دوتا آین مختلفه ایمش میگن چرخش اعتبار سنجی در واقع اولین چرخش اعتبار سنجانه حوزه حله این تعامل سلوی شدیده تعامل دومشون نگاه قرینه محور کنار رفت و نگاه سند محور حاکم شد خب اینجای بحث اختلافیه شما از حوزه حله ابن ادیس قرن 6 تا قرن 10 نگاه و تعامل سلبی شدید با روایت راویان یعنی فاسد و قرار سقه رو میبینیم. شهیدستانی شاید یادتون باشه تو لومه و روایتو سکونی یون. این روایت سکونی مالی شده است. نگاه چه؟ تخریب شدیدی. علامه. محقق شهید اول، شهید ثانی، شاید اوجش رو توی منتقل جمان ببینید. منتقل جمان فقه روایی پسر شهید ثانیه. اسمش اینه دوستان. منتقل جمان فل احادیس صحاح ول الحسن. منتقای تصفیه شده. جمان درها، درهای تصفیه شده برگرفته از احادیث صحیح و حسن. پس موثق کو، میگه موثق کو. موثق کو جای کاره. اصلا کلان از گردونه خارج میشه. خب هر فقیهی که میخواد وارد گردونه فقه بشه اولین چیزی که مسلمه باید اظهار نظر کنه مبنا اتخاذ کنه این که آقا با روایت موسطق چه کار میکنه موسطق یعنی حدیثی که راویش سقه است ولی صحیح المذهب نیست یا کلند سنیست سن یا شیعه فرق فاسده است حضرت آقا دیدگاهشون دیدگاه قدما و بعد الجبل که فساد مذهب با وساقت قابل جمعه شیخ یه کتاب داره اسم الفهرست آخر تو مقدمه می من هر کدوم از مؤلفین شیعی نزدیک به هزار نفری رو که مدخل زدم فلا بوددم ان او بین اعتقاده من باید مذهبش رو هم بیان کنم چرا می که لعن نکسیرن من از اصحابنا و اصحاب الاصول ین تحلون المذاهب الفاسده و این کانت کتبه هم معتمده میگه چه اشکالی داره فاسد المذهبه کتابش قابل اعتماده نگاه قدما اینه فاسد المذهب میشه اگر وساقت اعتماد باشه میشه با وساقت جمع بشه یعنی چی؟ نه یعنی اینکه که روایت فاسد المذهب رو میپذیریم یعنی شاید یه سقه فاسد المذهب هیچکی هیچگی نپذیرفت نه منظور اینه که فساد مذهب به خودی خود مخل پذیرفتن نبایت نیست حضرت آقا مبناشون همینه مثال رو بحث قیاس ابن کلوبه کلوب یا کلوب نخونیده موقعی جایی دیدید آخه دیدم طلب ها کلوب کلوب کلوب تشتید بدید ام بش بذارید قیاس ابن کلوب ایشون میفرماد با اینکه عادل نیست عادل یعنی امامی نیست اما چون سقعا مورد اعتماد اورما قرار دارن البته ایشان تصریب به ساوت نمی کنند. شیخ توسی در عده اون جمعه عملت به اخبار سکونی و اخبار قیاس ابن کلوب هم هست. اما میگوین مورد اعتمادن بنابراین ما روایت قیاس ابن کلوب را مادامی که معارض با روایت صحیح از طریق خدامان نباشد قبول میکنیم. این ای است که ته کلام شیخ توسی قرار گرفته تو اون عدت الاصول اسم چهار نفر رو میاره املت طایفه به اخبار سکونی قیاس ابن کلوب هفت ابن قیاس و نوه ابن در راج. و یک ظریفه دو تا کلمه کوچولو ته عبارت میاره بلکه از فقها ندیدند این رو و تصور کردن ادعا کردن که شیخ توسی ادعای اجماع بر عمل به روایت این چهار نفر رو کرده حضرت آقا خیلی با ظرافت اون مسئله رو هم پیش کشیدن روایت به نظر ما و طبق مبنای تقریبا همه علماء از روایت معتبره است مگر کسانی که عدالت رو در راوی شرط میدونن یعنی حوزه حله و جبلامه. و من اندک خیلی اندک یه مقاله هم داره تعملی در حجیت خبر موسطق اگر اشتباه نکنه مقاله قشنگی دفاع کرده از حجت. حجیت نداشتن خبر موسطق تراش خوبیه زحمت خوبیه البته مابل پذیرش نیست ولی اران قشنگی رو جمع کرده دومین مبناییشون یه مقدار صورت رو باید بیشتر بیاریم ببریم بالا که یک بحث بسیار بسیار آمول بلواست و گسترده این اول عرض کنیم تا مشخص بشه اصلی ترین آمل تضعیف راویان شیعه پدیده نیست جز قلوف اگر بگن آقا جان راویان شیعه بیش از 90 درصد با چی تضعیف شدن میگیم قلوف پس اگر یک شخص در قبال این مبنا در قبال این پدیده یعنی قلوف اتهام به قلوف مبنایی پذیرش یاردی داشته باشه فقاحتش خیلی عوض میشه ایشون قایل به این هستن که تضعیفات مبتنی بر قلوب در صورتی که فقط مشکل این راوی همین قلوبه باشه قابل پذیرش نیست تو دو تا فراز من فرمایش ایشون رو بیان میکنم از دو تا نگاه و دو تا دلیل کامل مجزا یک ایشون میفرما قلوب به مسائل معرفتی و اعتقادی مربوطه پس حتی اگر قالیه نگاه قلوب آمیز نسبت به اعمه داشته باشه منافات با وساقت نداره. آدم خوبی است در نقل. آقا اعتقاد داره که مثلا در تفویز اعتقاد به تفویز داره. واسپاری تامه برخی از مسائل و امور از طرف خدا به اعمه. خب این چه رفتی داره به این که ما بگیم چون که اونجا قائل هستیم پس معلومه تا آدم دروقو غیر قابل اعتمادی هستیم. نه. می تواند موثوق به باشد اما غالی هم باشد بنابرین رمیه به قلوب منافی و منافی وثاقت وی نیست و نگاه دوم زاویه دومی که وارد این بحث میشن اینه که آقا جان بسیاری از قلوب ها از حوزه قم ناشی شده و شهادت قمی ها به قلوب یک راوی اعتبار چندانی ندارد اعتبار چندان اعتبار چندان یعنی چی یعنی اینجوری اینجوریه که تا دیدیم قمی ها حکم به قلوب دادن بذاریم کنار نه خیلی اعتماد نکن البته بی توجه هم نباش از این باب که قومی ها خب یک مطالب یک شعونی رو قایل بودن چیزهایی رو قلوب می دونستن شاید بشه این جمله جمله معروف شیخ صدوق توی کتاب منلا یهزور الفقیه رو پیش کشید ایشون اونجا شیخ صدوق در منلا یهزور از قول استاد بزرگش ابن ولید که میگه رحمه الله بیان می کنه که میگه شیخنا ابن ولید یقول اولو درجهن فل قلوب نفی صحوه عن نبی هر کس بگه پیامبر سرف نمیکنه بدونه که وارد مرضهای غلوف شده خب این نگار حوزه بغداد و ما هم الان نداریم الان معمولا خیلی معمولا قبول ندارن که پیامبر سرف میکنه امام سرف میکنه البته تو پرانتز از کنم این بحث یه بحث ناقص پرداخته شده ایه نه کلام شیخ صدوق کامل درست تبیین شده و نه نظام اون نگاه شبکه ای تو این مسئله بهش دقت نظر شده ولی کلن حالا این بحث قومی ها مثلا درباره محمد ابن ارمه نجاشی میگه تعنه القومیون بالغلوف قومی ها گفتن این غالیست حتی دست علیه من یفتکو به گروهی رفتن شبانه ترورش کنن بکشنش فوجدوه یسلی من اول لیل الاخری فتوقفو ان اعتقادهم سه شب رفتن بکشن دیرن در نماز شب میخونه تا خود بعد از اشعثا گفتم پس معلومه قالی نیست چون قالی کسی است که نماز نمیخونه قابل به اباهیگریه این اتهامات به قلوب مثلا درباره برخی از راویان که از قوم اخراج شدن اینها مجموعهشون رو نگاه سخگیرانه حوزه قم رو به واسطه قلوب نشون میده البته این هم یه تحلیل تاریخی داره که جایی پرداختن بهش نیست سومین مبنای حاکم اینه که راویان استثناء شده در کتاب نوادر بیشون قالب تضعیب و بی اعتباری روایتشونه توی توضیح اندک شیخ توزی و شیخ نجاشی در مدخل محمد ابن احمد ابن ابن امران اشعری قومی صاحب کتاب نوادرالحکم اون جامعه بزرگ شیعی میگن که ابن ولید 26 یا 28 نفر رو از این کتاب استثنازد گفت این کتاب کتاب استادش بوده من نقل میکنم براتون الا این 26 نفر رو حضرت آقا نظرشون اینه که این 26 نفر یعنی اینها ضعیفن و روایتشون قابل اعتماد نیست این هم فرمایش ایشونه دو تا تکیه ارز <مارضان> کردم ما نگاه قرین محور حتی بر ریزه کاری های رجال توی دیدگاهشون حاکمه تضیفات ابن غزاری چندان پذیرفتنی نیست چندان یعنی چی؟ یعنی الا جایی که یه چیز تاییدش کنه شیخ نجاشی بر شیخ توسی ترجیح دارد اما نظام قرآن رو همیشه حاکم میدونن میگه بررسی قرآن ما رو بی نیاز نمی کنه باید بری دنبال قرآن تو توی, توی کتب تو کتب زیاد بهش پرداخته شده شما این عبارت رو جستجو بزنید مثلا تو کتاب رجال یا کتاب خانه فقر فی وقت کانو یخرجون من القوم این تعبیر رو بعدا به جستجو بزنید درباره این واقعی دوره ای از عواست قرنسه به قوم رئیسش احمد ابن محمد ابن ایسای اشعریه سخت گیره کردم، تحلیلش یک نگاه تاریخی داره که با دیدن کتب تاریخی درمیاد چرا این اتفاق افتاده آیا واقعا قلوف مسئله قلوف بوده اخراج یا چیز دیگه حالا جای تحلیل داره کار نشده. چارمیش آقا جان یه بحث فراوانی هست که آقا جان توصیقات متأخرین آیا پذیرفتنی سی یا نه ابن تابوس گفته فلانی سقه است علامه گفته سقه است شهید ثانی گفته سقه است یا معاصرین اعاظم فعلی گفتن سقه آیا پذیرفتنی یا نه ایشون قائل به این هستند که هر چند یک فرد مثل مرحوم وحید بهبهانی یعنی مرحوم محمد باقر بن محمد اکمل ایشون ادعای مثلا توصیق کرده یه نفر رو این توصیق قابل پذیرش نیست میفرمایند این برای توصیق کافی نیست دوباره نگاه قرینه مفر حاکما نمی اینجا ما سه تا دیدگاه داریم یه دیدگاه میگن قابل پذیرش است اونم عالمه یه دیدگاه میگه که قابل پذیرش نیست هم دو تا دلیل میاره آیت الله خویی بر رد توسیخات. یه گروه میگن آقا جان درسته که هجیت نداره من تا ببینم مثلا علامه توصیق کرده پس من بگم ثقته ولی درسته نمی ولی نه اینکه هیچ حضی از اعتبار نداره <تصفيق> نکن توی تعین مرز قدما معمولا شیخ توصی آخر حلقه آخره حلقه قدماست لسان القدماست توی آغاز متاخرین معمولا یه مقدار پس و پیش دیدگاه ها هست شاید جبش هم این باشه که دانش های مختلف متفاوته یعنی ما تو فقه ابن ادریس رو داریم ولی تو رجال ابن ادریس کار رجالی نکرده تو رجال سید احمد ابن تابوس رو داریم استاد علامه هلی دو قرن 6 شش. 660 خوردهی وفاتشه پس آغاز متاخرین بسته به دانش متفاوته ولی در این که قدم معمولا تا شیخ توصیه معمولا قبول دارن همه خب این هم یک عبارته این هم برای توصیق کافی نیست چون تنها توصیق قدم معتبر بوده معتبر یعنی اعتبار تام و توصیق متاخرین که ناشی از اشتهاده آنان آن هم با فاصله یعنی اعتباری که من به صرف این بگویم سقه خب پنجمین مبنا نپذیرفتن مرسلات شیخ صدوقه خب یه اختلاف نظر فراوان هست شیخ صدوق رحمت الله علیه یه کاری کرد سر علمای ما رو هزار سال گرم کرده که آجان این شروع کتاب اینه قاله قال از صادق علیه السلام الماء یوتهر ولا یوتهر و قال از صادق علیه السلام و, و, و رویان النبی. یک سوامه تقریبا مرسل... کتاب ملا احضر چیست؟ مرسلات. آقا مرسلات پذیرفتنیه یا نه اختلاف نظر فراوانه یک نظری که حالا بعضی بهش استناد میکنن فکر میکنم حضرت امام رحمت الله علیه هم این رو ابراز فرموده بودن اینی که جایی که صدوق میگه قال از صادق یعنی قاله گفت مطمئنه ولی وقتی میگه رویان یعنی نبی اون استحکام اون اتقان اون اعتماد ویژه رو نداره مثل محرم هست ما مثلا میگیم امام صادق اینو فرمود محرم که بشه میگیم در کافی نقل است که امام صادق اینو فرمود ببینید یه نفره فرق میکنه اینو حضرت آقا میفرماود این مطلب به نظر ما کامل نیست چون چه بسا روات سند به نظر ایشان یعنی مرحوم صدوق مورد اعتماد لاکن به نظر ما معل اعتماد نباشن پس یک نگاه پذیرفتنی به مرسلات شیخ صدوق ندارند و آخرین بحثمون بحث انجبار زفع عمل اصحاب ایشون در انجبار زفع عمل اصحاب یک شرط میذارن اینی که روایت متعارض نباید وجود داشته باشه اگر روایت متعارض وجود داشت عمل اصحاب دیگه حجیت نداره و آخرین بحث تو بحث تعویض اسناد که یک بحث بسیار مفصل یک سرفصل رجالیه که گاهی اوقات گاهی اوقات شیخ توصی در کتاب تهذیب الاحکام روایتی رو میاره مثلا از عمار ثباتی و سند سند ضعیفیه یک نظریه مطرح شد از زمان فکر می کنم اولین کس شیخ حسن پسر شهیدسانی تو مقدمه سوم منتقل ترجمه اگر اشتباه نکنم ایشون میفرمان ما میتونیم بریم از کتاب الفهرست طرق کتب عمار ثباتی رو که این روایت تهذیب ازونه وارد آریم اگر طریق صیدره جای این سند ضعیف جایگزین کنیم بهش میگن تعویذ اسناد با اون تعویذ اسناد که توی اسناد و اینها هست و ثبت اسناد با اون فرق میکنه با این شروع شد یعنی تعویذ سند تعویز طریق از کتاب الفهرس به جای سند ضعیف در کتاب تهذیب ولی بعد از اون بحث پیدا کرد مفصل خیلی مفصل شد مثلا طرق شیخ مرون نجاشی جای طرق شیخ توسی میذارن میگن اینا دوتا تا مشایخ واحد داشتن حوزه حدیثی واحد بودن حضرت آقا نمیپذیرن میفرمان که غیر از اسناد خود شیخ در رو نمیتونید جای اسناد کتاب تهذیب بذارید نجاشی درسته که رفیق شیخ ولی از کجا معلوم که نسخه هاشون یکی باشن مثلا شیخ این کتاب رو از ابن عبدون گرفته نجاشی این رو از ابن نو سیرافی گرفته دو تا استاد مختلف دوتا مسیر مختلف نسخ مختلف و اشکال خیلی دقیق و ظریفیه بله نه مسئله تبدیل سند را که مرهومخوی و تلامذه ایشان روی آن تحکیل کردن برای ما قابل توجه نیست سند تحبیل سیاره با اصل مسئله که مطرح بله بله اصل مسئله <تصفح> که مطرح میشه یک نگاه قابل دفاعیه البته یه نقدی بهش وارد هست خیلی بهش پرداخت نشده معمولا میپذیرم توسعهش مورد پذیرششون نیست حالا توسعهش رو اگر ببینید یه کتاب سه جلدیام درباره تعویذ اسناد یک شقوقی رو آورده که نمیدونم از کجا آورده خیلی ریز از جاهای در آورده که نذیرترینش نجاشیه ایشون نجاشی رو نمیپذیرن یعنی باقیشون هم نمیپذیرن خب دوستان بحث ما تا اینجا رسیدیم به سرفصل عمده و بزرگ توثیقات عام که می‌خوایم به اینجا برسیم لطف خدا